بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله عالمین و صلی اللہ علیه و سید و رسول الله برقاقه اقیبین و قهرین و مرسومین نصمی این بود که به مناسبت سه بعد از اهلاقای دیگه هم بررسی بشه این ظاهره که توشی چید برسیت همچه این به همون سهت خودون رو غذیه ما آنو انسکاهات اینها رو یاد خود شماجبه که در اینجا مناسبتی مترجله علم شدیم و اینکه در وجود 14 رنگ علمای اسلامی شیعه و سنی چه رازی به حیدت منجر شده بودنش رو بحثی کردن که راهی شماذ به اشاره می‌کنید و در مقابل او و در مقابل اذهی از اصطلاح این این طوری ارز کردیم در روایات ما و عامه کلی استرغا به کار برده شدیم زیادم هست در مسئله استرغا این عمل متعارکی بوده در میان جاهلیت و از کردن در کتب کتاب نسل مفسر دیتاریخ اسلام دیتاریخ الارب و اسلام چون درگه طولانی میشه چون بعضی از اون روحیه هایی که عرب جابلی به کار می بردن امرده بودن, بودن. و ارز اصطلاحاتی که در زمان بوده یکیش روحیه بوده یکیش آوزه بوده این و زال روحیه عبارت که از کلام بوده حالا مسجع بوده مقفا بوده،, بوده خونده می شده برای این که دفع اون چش و دفع مرنز یا دفع تختی یا دفع انواع گرفتاری ها رو با, با اون بکنن این خونده بوده. در روایات اهل سنت از 4 تا 5 تا وجود داره در روایت ما به مقدار وجود نداره بحث کیفیت جمع بین روایات هم از اکثرش چراغه دیگه برمیگرده به اختلاف مبانی مثلا در یکی از روایات داره که لاغویت الا همه سه مورد رو به اصطلاح طری رویه قرار بده بعض از روایات هم مطلقه وقت چی چیکار بکنیم بعضی اون گفتن حذف مطلق بر واقعیت بکنیم بعضی اون گفتن به درجه این یکی ما هم هست، دیگه نه هم هست. بعضی گفتن نه درجات داره، این سه درجه موکدتر در بقیهش هندوزه نیست. یاد رو داشت که رقیه اصلا درست نیست. حمرش بکنیم در این مبدا. مثلا رقیه ای که به غیر از راه صحیح باشه. در علاقه رجاله که از اموری که در اینجا گفته شد. یه راه در مقابل اینها وجود داره و اون این که ما چیزی که به این جوامع توجیهو جمع بکنیم یه این ازیار بکنیم اصلا سادر یا نه مثلا لا روالالافی این در روایات ما منحصره به طریق سکونی و جعبیه یا تو این دو که به لحاظ ظاهری خود دیگه نداره یه ما نیازی به جمع نداره مثلا احتیاطی به روایات مطلق در باب روحیه ما موقع معارض نداره بعده یکی روایات جمع هست که اونم برداره زواره فیلم نه کسی من نبرغا و سهر شعبت و نشه این هم دادیم این هم سند روشه کنه لذا البته استرغا نحی از استرغا مطلق هم در کلمات اهل سنت هست که ما نظر بیم که اون روایت نحی از استرغا ظاهرن اطلاع از علماشون گفتن مورد مقام ترکل است و تلسان اینقدر به خدا ترکل پیدا که حتی اتیاجی به باقیه و. حتی به دواه و اینها نموشتون بریده بود که ما گفتن احتمالا اگر اون رواهات قبول بکنیم اگر. به اسطلاح مراد این هست که قده هستن اصلا خود و وجودشون روئیه هست دیگه نمیخوان. این که میگه 70 رو دیدن که یک از حساب برگزنه کیه هم لای اکبور و لای از سرقون اهل داخت کردن و علا رب به هم اشاره فی این اشاره به دلیل نمونده که اینطوره. الشریدر مولایون ای بابا جوانی که استثناء نگفت جان او با جان استثناءس جفت. استثناء در اصطلاح یعنی ان الله. چون در واقع در ما تعبله نمی‌شه یعنی این قانون ظالکه تنها الا الله در همین کتب فقهی هم یعنی استثناء خودش است ان شاء الله. انشاء الله گفتن قولنمو لرو میگم ممکن است افاد ان شاء الله نگنم مثلا این خود وجودشون رو ان شاء الله ای که استثنا نگفت یا نه او با جان استثناست گفت حالا ظاهرم مراده از اون حدیث شریف که نیست که مطلبش اینه وجودات که وجوداتی هستند که بقول حافظ شیرازی یا نام که خاطر به نظر کیه اینا دیگه اصلا احتیاج ندارن که از این دست بزن تا خاص کیمیا بشه، یک مواد توش بذنن، ایکس حجر عزر میگه قول احتیاج به مجرد نظر کار رو عوض. حالا حافظ که نظر ورده، اصحاب در حقیقتن در که مواجز خطور عوض میکنن به نظر هم ندارن. بهش بگین که خاصا به نظر کیمیا کردن، به خطوری هم شیمیا. ظاهرا مراده از اون حدیث مبارک و لایستر اون و علا رب به همیت رکنون یه علا به همیت رکنون اشاره بیم الان که به ما تا ما به لحاظ مجموعه روایات که در استرغاق داریم سعیه هم و ضعیف مشکل خاصی نداریم الا اون روایتی هم یه درست چیز این هم وضع سنبی روشنی نداره. میشه اون رو قبول نکنیم یه چیزی دیگه هم که متفقه من علیه روایاته استرغاق مالای و رفت ما هم داریم در قطع اهل سنت هم هست یعنی انسان این که هست به زبان های دیگریست و خطای دیگری، و به شکل هایی سه چیه این هم نهی شده اما تا اون یک روزه ذهن من از را تا دیگر نگاه که شده به نظرم از پیغمبر نقومه شده از صحاقه نرم شده این من به مولای اما تو روایت ما هست استرقاق به مول اون روایات که هم که جو رو به شاید برات مقدار زیادی از استقاع هایی که در جاهلیت بوده این هم هست احتمالش شدیه راست و از بود، چون جاهلیت اصل ایمان به خدا را قبول داشتن کهیه مراول دیگری شرکتن بش اینجا این نیست توضی اینجا نیست احتمالا اون رادی از استقع هاشون که به خدا برمیگشته اون مشکل نداشته این اشاراته شرک مشکل داشته مثلا چند تا که قانون جاهلیت لبیک نگفتن اصلا برای اومدن حج لبیک لا شریک لک الا شریکن هو لک وصفش <تصفيق> توهید بود نصفش بود. این بود اینطور نبود بله لبیک لا شریکن لا شریک لک الا شریکن هو لک تملک و مملك لبیک معروف جاهلیت این بوده هنده از کلمه یکیم 20 بیشتر لبک از جاهلی نه شده در اینکه تو آلمان فصل کیفایی خرده، ولی از مساده ات فریشینال کننده، با کند لبکی که مشهورشون این بوتی ارث می‌کنن. شاید مرا داریم و مالی هم اصلا کسی رن مرا دارم می‌روم اونجا، کسی رن می‌نام روا. شاید وارد اون روا بوده که جاهلیه بوده یک قسمت خویش، خوب بوده مقدار زیادش با بوده. احتمال هم داره که، چون می‌دونیم نخاله یک مشکلی که داره که ما در اصول و در ما باعث خیر در هر دو نمیتونیم مثل خلاسه کلیاس وقو کنیم. طبیعت فی باید همیشه به خارجی اینعلای داشته باشه. چون این وقتی اختیت در خارج با خیلی اوها اونعاددی یا درکاناتی میشه مشکل میشه. مثلا باقا رو زی از و قور ممکن به زیاده قبل مثلا هر اول معروف افراد ناشای سویان. اینه که طبیعت خ اینجوریه طبیعت یعنی بخوام بگن بیا شما، اصلا استرگاه میکن، اصلا پس کنی دعای بکن این همچون روشت ها چون که نباشه تا نظر یه عفض جاهل و نردان و خرافات و عباطی و شاید نه کسی را بینر رقابست و صحب نشه اشاره این باشه یا شعبت نشه و هر حال اصل استرگاه بوده این یک استرگاه فی نفسه اگر خودش فی نفسه مشکل نداره حالا حقیقتیش یعنی اشاره بید. و در روایات مجموعی روایات ما و اهل سنت ترکید شده که استرقا یا به قرآن باشه یا به دعا باشه به عموری که باطل افی نفسه ندارد باشه این هم جزو مسلم ها بعضی از هم ترکید کرده در سه مورد استرقا در غیرون نکنید خب این با موارد دیگه روایت انسان با روایت ما نمیسازه نظام برای ما هم قبولش مشکله انحصار به سه مورد که در یک روز آمده بسیار مشکل بله انحساب به قرآن و دعا این واضحه اینم راجع به استرقا نوع عنوان دومی که مردم در این کتاب جامل احادیت اوزه بوده اوزه با استرقا یکیه بیشتر فرقش اینه که اوزه می نقشتن و آویزان میکنن بردن یا توی یه موقع در بردن قصد و تحديد. آهنی که مثل نی گرفت میکردن تو اون میگذاشتن آویز این رو عوضه بکنم. استرقا بیشتر جنبه لفظی بوده. عوضه که بکرامات الله عوضه بکرامات. مثلا یا پلان این از این رو برزی بیشتر جنبه لفظی بوده. عوضه جنبه به استرقاه کتابتی بوده. و بعد همون شرائطی در استرقاه هست در عوضه هم هست. فهم نمیم. در تعویز هم هست. باید به مالایاره هست نباشه. باطل نباشه. باشه، به قرآن باشه. به... به ترفاییات باشد ورزندگی به علیه باشه و یک مقداری از اینها هم خصوصا در مساجد ما معلوم شده که روغن سنجی به که منصورت نذرزاده صاحب اللهش یک کربل زده جواب که خیلی آثار اجیب و خاکستر داره این صفحه را آثار اجیبی داره بررسی زده جواب که با اون ترتیب خاص خودش رو رفوس رو تا آبونهان با آب زده همون هنرکشیش. حالا یه حالی این صفحه را خودمون بعد از رسول با هنر آثار عجيبه ای برای حضرت اجازه الله موجود بوده خود رو, رو بهتون میگم ما بعضی چطور کشیل نیست. چیزهای عجيبه را دیدم مال حضرت رضا صلوات الله علیه. حالا این کیف ما کار اینها رو اصطلاحا اوذه میگفتن. البته یک جوریش و گاهی گفتن تمائل میگفتن. این روشن نیست. ظاهره تمائل همون مهرهایی بودی که آمیزون میکردند. الانم کو لیل در روحا. علمانه که چشم زخمشی نه لحظه آوزون میکنن یه چیزه یه آوزون میکردن مثل غیر یه سنگی مثل محره های یک حالت خاصی روی سینه روی مثلا دستش بازوش آوزون می، میکردن که چشم هم معلوم نیست تماع مطلقه به اصطلاح شامل اوزه هم بشین این بحثش بزرش نیارو من نمیم بخش سومی که در این کتاب جامال حدیث آمازه و نشت را اینجا آورده نشت که ما با شواهد موجود رو داریم چیزی در نشت با قرآن و دعا رو دارید. حالا ایچیم اینجا آورده را, را نمی کلمه نشت هم در میان روایات عامه هست و نظام خوندیم تفسیر نشت رو تفسیر از نشت در روایات عامه هست تو روایات ما هم هست اون نوشه تا اونجایی که ما میدونی جنبه دعا و قران اینها نداره. ولی داره در اینجا کلمه نوشه رو یا که شاید از فقط روغیه مثلا یکی اینا. نه نوشه است. در روایات ما، maksud اینکه از آن کتابی اون در به ترموی شو. نمیگم ایشون باب خاصی در نوشه. واسه نوشه در روایات ما متفرق و متراکم. و توقع ما این بود که مثلا مرحوم در این مساله فعالیت ورزه. در بهار کنیش یک جا الان در بهار در جه های متحددیه. ما یک مورد در باب اصل داریم که نشتون یک مورد در باب نوره در آدام حمام داریم که نشتون و توهورو یک مورد در باب جلد هفتاد شده شش رو نظرم مجلسیس عبائل جلده هفتاد در باب قصد و رأس به ختمی که ما تر، تر، تر، ترفاز می ختمی بله ختمی حال ختمی احتمالا همون خیری قدیم باشه احتباله همون باشه بایده چیز دیگری باشه بس گیاه شناسی زوی <تصفيق> خودش خم جزو گیاهان پرفایلی هم هسته و به استثنای سابش به پرویدان خیلی کم اثره تمام اجزاگی هم داره اثره یعنی از ریشش بگیریم تا برداشت بگیریم تا تقومش بگیریم تا بلش بگیریم تمام داره اثره و همونطور که نوشن این جمله برای اثر از دو اپنی ها بسیار بسیار بسیار نوات خوبیه و طبق قاعده نواتی قدیمی ها بیشترین اثرش هم ماله میشه است بعد مال تخبه، بعد ماله گله، بعد ماله بریه استلاحا اینجوریه الان در روایت داره نشرتون که این ختمی هم یکی از نشرهاست. اینجا هم داره اولتر اصلا در گهار 76 هفتاد و شیشون عوائل این دوتا سفرش نوره و اصل و ختمی یک جایی هم در بهار همین جلد 76 با بیغرد مایول همه عنوان این قرارداد در این جلده 77 سفره 300 و 22 22 هم اونجا دو سه تا روایت توداریتر آورده یه روایتی از امیر الماملین اشراطان یه اشراط ده چیز رو داده. این مزمون رو من در روایات آمه نایدم علایه هاده خوب بود در روایات اصحاب ما آن من حال داشتم بعد و مفیدم هست چیز مفیدیه. مجموعه ای که من تالا پیدا کردم خیلی هم. کار من کامل نیست مجموعهی که من تالا پیدا کردم در ابواب مختلف و مختلف بحاره همینطور که از کم نوره هست اثر هست بله ختمی هست و این مایوزه هم وغم این ده تا از کتاب محاسن گیرسه محاسن و 6 سال مرحوم صدوق سال تو باب اشره آورده محاسن تو باب اشره تو محاسن نوشته 6 ساله اولش باب واحد و 19 و 8 در باب اشره 80 تو 80 اشیاء ده چیز رو به عنوان نشره اونجا ذکر شده هرستون که طبعا تو هیچ کدوم از اینا ها نه قرآنی هست نه دعایی هست مثلا نشره از دعاء قرآن باشه این در در این کتاب اشتباه کلمه نشرا و در کسی او برده دار از کسی هم از کتاب دوگری بوده و هرهای اشتباه هم آمده هر کلمه نشره در اصطلاح اهل سنت به دو سی جور گفته شده که یکیش به این صورت از کلمه نشره از نشر، از یعنی پخش کرده یعنی چیزی که, که ما میاد انسان با منشرف میکنه پخش میکنه باز میکنه لذا مرحوم کل... م از نشوه ما یده بله همه ورغم هم تحمیده چون تو این بابا بردن مجلسی. اما کلمه نشوه از کردن توی عین و توی چشم و توی استرغاق و توی این موارد هم آمده و اون چیزی که در کتاب احرسان نتخوندیم یه نوع به اسطلاح جنبه دارویی دارد داروی استعمال بیرونی برسته نه درونی نه داخلی استعمال خارجی که مثلا ایام باها نوشته نورشته بود خونه بازون انواع گلهای بیابانه و گلهای باقی رو جمع بکنه بگیشونه آقا رو سر خودش بریزه این آثار سهر و کشم و این و رو از ده میبرن این وقتی انسان مجموعه روایات نشره در روایات ما نگاه میکنه انصافاً احساسی که به انسان دست میله روایت نشره از کرد نشره در خود سهی بخاری هم آمده. در میان خود جاهدین هم ورست بوده خود اون هم درم یک احتمال داره که شاید عیمه ما میگن بگن نشری که برای در جاهدین یکی یا دو تا داشتن یا در مطارق هم همان نشری منحصه ده این یکی دوتا نیست چیزای دیگه هم هست که این قصف دارن هم نشری توی عشق احتمالا ناظر به اون باشه اما مخواستن وقت اون نشری که در در چیزه مثلا این انصاف راهبر خودش نشه اینج مواادث هسته به جاد هسته عامل راهیا گداغی نادان میشن میکنه بحثو کنه صحبت میکنه این خودش اینو این اینجوری داره سواکه یه چیزی اینجوری داره و هر از به قرینی میشه وضعیتش همه نمیخوام رو خونن یک مقداریش رو در این کتاب اینجوری آورده که مثلا مثلا با هم شسوشوی مصرف گل ختمی رو هم با نشت آورده دوشونده گل ختمی یا اون نوره مثلا که استعمال بدنش پاک بکنه موهای زیادی بدنش رو بکنه این رو هم دوزه نوشه رو گرسه. من احتمال میدم می ما از مجموعه این موارد رو با هم دیگه زمینه بکنیم احتمال میدم اینا تصورشون این بوده که از امراضی که برای انسان پیدا میشه که امراض کارجل، تسخیر و مثلا سر چشمی و اینا رو می دو تفسیر برایش میکردن خوب به بکن بکنه یعنی این 14 موردی که لاال من تازه پیدا کردم میگم نمی‌دونم <تصفيق> نسبت کاما بدن من در روایت احمدی توجهی که من 14 مورده میگم یکی خوشمون هست یهو جنب و تو این مصادری که من دیدم جای جمع نگردن در من دو سه بود اما ما توی ما بیشتر آمده. ما از اینها دو چیز رو میشه بفهمیم انصافش یکی این که نوشر رو امور روانی و طلبی میگرفتن شاید خیال میکردن که اگر انسان تشویش ذهنی داشته باشه حاضر بودیش پریشان باشه پریش روان روان تریش باشه با آده این خود روان پریشی یکی از عوامل اطلاع انسانه مثلا انسان مسخور میشه چشمش میخوره اون خود روان اون اساس روح وقتی ناراحتی داشته باشه بدن آمایش آز آبست آبست بدن آمادگی برای تذیرش مرض و بیماری رو بیشتر ده احتمالا یعنی آدم چهار درهای واقعی کرد میکنی و هر تو بدی هم هر تو خوبی یعنی نشه هم اون که مرمون مجلسی فهمیده از مایوزه بالا همه بلغم این پریشانی این فکر این منشأ میشه که خود بدن یعنی خود سلول ها ضعیف بشن خوب لقص بکنون وقتی انسان پریشقبانی پیدا بکنه حالات پریشانی این منشأ میشه که سلول های بدن ضعیف بشن سلول ها که ضعیف شد سریعا مرز با قبول میکنن لذا خب نگیدین خیلی افراد هستن حتی داره که انه باید خضره به به تفضی نگاه بکنه میگونم انه نظر مثلا به زیبا نگاه بکنه تا همون ربایت نوشه ظاهرم امودی ذکر شده که اون حالت روانی رو در انسان میاره پایی یعنی من فکر میکنم شاید یعنی وقتی که اینا ها رو ما به اصطلاح چون بیدین شما در ممکن بوده خیلی از مطالب در اون زمان توجیه علمی نداشتن نداشت ارزش نمیتونن بگن توجیه علمی اما بعد ها خب روش خب که میاد خودش بحث میکنه خود همین پیغمبر اکرم صلی الله علیه مریض شده و منجر به شهادت ایشو شد یا شهادت ایشا خب این بحث داره که ایشون مثلا چی جور تبی گرفتن اون تبی که ایشون گرفته و غیر از اون العلاجی که یه علاج خب خائنه متعارف بود مثلا پیغمبر در 7 تا 4 مدینه آب آب محصل تقریبا با آب الان هم علاج میکنم دیگه پارو میزنه تو آب سرزوی دیم این چی جور تقریب بود که با علاج هایی که متعارف بوده این از بین نرسده اینو دارم الان که اون حقیقت که طب رسول الله چی بوده که منجر به رهلتی ایشان شده به این رضاله خود تقریب که ابراهیم پسر ایشان که در یه رحمانگی یک سال نیمه ایشون از پادر این مثلا چی بوده علتش چی بوده وزر مادرش چی بوده شیدی چی مکرده چی بود اینا رو میان بررسی میکنن که با شواهد تاریخی وقت ما به قضایی که در این جب واقع میشه میشه خیلی دیارا بررسی بود ظاهرن ظاهرا ولی علمانی دلاله ظاهرن اینا اعتقالشون این بوده که بعضی از پریشانی ها بعدی از ناراهدی ها این زمین ساز حالا امراض رو گاهی نمشتنم جان نشت چیدی برای امراضی که محسون من الجن جن رو اینسان آسیب رسولده حالا یا محسون من بوده یا این بوده یا سه بوده تفسیر مرضش رو فعلا واقع اینا این احساس رو می و درست هم هست قلت شما اگه هوا خوب باشه بگید بیابون شد یعنی خمق آدم کم میشه شه اصلا ترهاب می جسمش مرد روز خواهید دارم وضع عمومی بدن به اصطلاح ولذا الان به طور کدیده این که الان از طب قدی یک بخشی دارن به نام حفظ و سحه چون ما میگن طب اعاده اعادت و سحه نیدیم در بخشی دارن که اعادت و سحه به انسانی که مریض شد چون مرض خروج بدن از حد اعتداره اقتلالی که در بدن لازم میان حالا این کلمه احتدار یک چرکی داره اما قدیم هم جدید به جهاز قدیم توش بحث داره که این کلمه آسانشی میگه حالا خروج بگر از حده اعتدار رو مرض میگه اگر اعاده کرد برگشت به حده اعتدار میگه رو میگم تب اینجوری دیگه سرما خورد برگرش به حال عاده میگه الان و قدیم میخوا الان نه الان بیشتر اعاده سهر رو تب میدونن لزان هم درمان رو غیر از بهداش میدونن در به قدیم بهداش و درمان یکی بود اشتباه نشه اصلا درست به قدیم وقتی کتاب سه رو تحصیل میکردن یک حصیلش یک کتابش حبز و بود ما حبز و سهر این بهداش بهداش دوم بود اصلا در به قدیم حرفشون این بود همین که سه رو نگه بگردیم نه این که همین که ما سالم هستیم این سلامت بمونه حتی الان هم ادعیه کو در این گیران شو تو مقالاتی رو توی تلویزیون پوشش کنین باز متخصصین میگن ما وجه اینه که به درمان باشیم ببین بهداشت عمومی رو بالا ببریم یعنی کاری می‌کنیم که مرض نیاد که ما احتیاجی به عاده تحاب نشه بشه, بشه در حقیقت استقرارش این بود دو باب مستقل قرار میدادن حفظ و سهم و اعاده و سهم در زمان ما غالبا حفظ و رو بهداشت طبیعی می‌گلان یه عادتو رو درمان تصیر میکنه پزشکی و عادتو سهمونه اما درکی به قدیم خود اون بهداش جزء به اصطلاح کد بود هفت و زرتل از اون پس بنابراین در حقیقت این نوشه اگر بخوایم یک مقدار دقیقتر صحبت بکنیم ردیق قران و ادبیه نداره ها روشن شد چون در اون حدیث نوشه اینجا وجود داره به مناسبت نوشه در حقیقت عبارت از یک نوع بهداش بوده زیر بنای این بهداشت روانی رو دید خوب در قفتی هستی یعنی آرام خودش انتشار پخش شده، یعنی یک نوع آرامش روانی این به سعبیر مجلسی یعنی بخیر بله هم وقتی رخیه هم و قمرو اینا خیال میکردم که این منشأ چیه منشعه یکی گلوشت رو می گیرد <تصحیح> پس واقع این بود پریش روانی و پریشانی و هم و غم این سلوله های بدن رو ضعیف میکنه وقتی سلوله ها ضعیف شد به زودی تذیر شهر مرز میکنه در مرز هم تفسیر بود یا مستان در جهر یا سهر رو یا این رو یا فلان یه رو حساب میکردن یعنی بگید تطورات کلی درسته و اصل تطورات حالا ممکن شما مکسوم مخصومونال جمعیه که مخصومونال دیدن یعنی میکرو یعنی وقتی انسان قمو قصد داشت میکرو خیلی سریع تر میتونه در اون بکنه یا بیروز اما اگر حال روانی او به تأبید عدیمی های حفظه صحت کرد بهداش این که سر الان هم هست یعنی شده باشن از راديو. و درستم هست من هم همینه اصلا راه صحیح بهداشه نه درمان راه. الان هم چند لحظه در ایوان مشکل بزرگ بیم درمونگاها میریم بیمارستان شلوغه افسردگی رو درمان کنیم عدد به حصول و اصلا وضع سیر عمومی بخش پزشکی در جامعه ما یک غلط محسوب میشه علل چی باشه تخم وازه بخش صحیحش نه والا منم میگم از از اینکه با دکترا نمیشن دیگه مفصل بحث و درست است بحث درستش هم, درست هم همینه ما باید دنبال بخش درمان بهداشت باشیم نه درمان اینو میودل میگفتن که یکی از عوامل این که صحت انسان رو از بخور بکنی هم مقامه راست هم هست این درسته شما هم رو که از می دوری مایده بل همین برقم میشه شوده اینو این در اگاد روغیه می گرفتم. چطور مثلا تلسوماتی دعا بکنه حالش خوب بشه دره بشه یه گرده بکنه دره بشه یابون گله ها رو بینه سرها رو حالش خوب بشه اگر سانی چی شد؟ در حقیقت یک نوع حفظ الصحه بود که از راه روانی اهدام می‌کرد. مثلا درست هم. این انصافا مطلب مطلب بسیار صحیح درسته درست تر هست. در از, از این 14 موردی که تا حالا من پیدا کردم، اگه اول با کامپیوتر پیدا کردن برید، پر از این 14 موردی که من پیدا کردم. غیر از این 14 موردی که من پیدا کردم، 10 تاش یک جا تو محاسن و خسار صدوق آمده. هم مسلسل خیلی صحیح نیست. از انی و مؤمن سالم ولی چهار هم جداگانه یکیش موره است یکیش هم اثر یکیش هم به اصطلاح گل خطمی هیچ چیزی هم داره گفتن چهار تا تو میشه 14 این مواردیه که ما الان در نوشه داریم اینا ر که ما الان دستبندی میکنیم و تحلیل کلی میکنیم من همیشه اصلا که ربات تحلیل ما احتیاج به تحلیل علمی داره اینها بیشتر ناظر به جنبه های روانی چند تا شامل همیشه از این 14 تا 13 تا یک ازش ناظر به جنبه های روانی هستند. و خیال میکردن این نشه جلوه سهر و عین و جن و امراض و انواع مرزه ها رو میگید درست هست که نب اون تحلیل. حالا اون تحلیح نمیشه درست باشه مثلا حالا میگن این خیال میتونن بعضی ها مثلا در روایت جن آمده که مراده بهش میکروبه مثلا میگن نه قدیمی نه که همیزی ها کلمه یه جن ببینید لفظی نیست که ماهیت اون ش لغت جن یعنی مخیر مجنون خودش یعنی پیچیده جنبو پیچیده یک امر مخیر و پیچیده اسمونه نمی‌فهمه میکروب ماکرو به معنی حیوان ذره بینی اینم اینم محجمش ما میگم که لغت فرانسوی گفتید گوردی میکروب گفتید ماهیتی چه خلافی اونم میگه حیوان ذره بینی جاندار ذره و مقابل ویروس جاندار نیست نه این لغت میکروب ماهیتش روشن کردن لغت جن ماکرو این احساس کردن که یک موجود ریز غیر قابل رؤیت وارد بدن میشه سهت از بدن میبره در یک موجود ریز غیر قابل رؤیت این وارد بدن میشه این صحت بدن رو از بین میبره درست هست حالا قدیمی‌ها اسمش جن گذاشتن یعنی پوشیده پنهان جیرش میشه میکرون گذاشتن یعنی حیوان درینی مثلا به اصطلاح فارسی ریز یعنی ریز شده که قابل یه ج... اه... حیوانه که قابل رؤیت نیست تقریبا منظور کلام. فهمید <تصفيق> هر گوشی دست نخورده، ما اون فرضیه دیگه چیه نه؟ این لفظ به کار برده شده برای اینکه فقط بشری اشاره بکنه که این واقعیتی هست موجودی است، این زنده است و حیات به این معنا، تحرک داره، حیف ازش هم نمی‌دونیم بهش کردن دیگه نمی‌شه. توی جن، توی که ازش هم میگه، هرچشم کوشش از این بکن واقعیتش این, این طور نیست که با تغییر لفظ دار پس یه مقدار از این زوایات که درست هم هست میخورده یه مقدار از این زوایات هم که آدم درش تعمل میکنه و کلمات سلمی ها که خوندین و کلمات به اصطلاح خود جاهلین ظاهرن یه مقدار از نشرا هم برمیگشه به مجموعه عوامل بیرونی بدن یعنی یک نوع آلودگی، پلشتی، چرکی چرکی در بدن بوده اینا تصور شدید بوده که این چرکی که در بدن هست این مهمنیز برای بیست داده بود ها، برای مرد ها درست هم این هم درسته <تصفح> پس یک قسمتش روانی بود که اونم درسته یک قسمتش هم برای این بود که خیلال میکرده اگر بدن چرک باشه آلوده باشه آلودگی داشته باشه، تمیز نشه این میشه لرای از امراض. این مرازشون امراض شد؟ و لذا مثلا نوره که انسان با نوره می موها رو از بیر می برده چون خود موه ها منشعه دیده مثلا شفش مکنی شخش باشه انواع بشه کن با انواع. این عبارتی که داره که شما مثلا من با مثال برید صحرا گل ها رو بگیرید بعد اینا رو بلند رو بلند رو بریدید این نسخش درست هست چون اگر لابلای پوست بزن لابلای موها، میکروب هایی باشن ویروس هایی باشن حیوان ها که موجودات زره بینی باشه یا حتی غیر زره بینی مثل کک و مک و اینجور چیزا با این مجموعه گل ها از بین میرن که ناسه دوفونی اصلا گیاهان بتر طبیعی گیاهان صحرایی یعنی اصطلاح ماها خدرو در کتبه که برقیدی مثل هست کردی داود یم یا و یستن بود این دوتا رو بکران میرنه مثل یه گ گیاه یعنی گوتلی خودرو، یستن و دین چه گیاهان کاشنی باشه چه خدرو باشه قائلش اینطوره خوب دقت گیاهان خضرو جنبه مزات سمند و جنبه دارویی داره گیاهان کاشنی جانوروان جنبه خوراکی داره برای تغییر گیاهان کاشتنی طبیعتاً مثل حیوانات دیگه حیوانات علف‌خوار قائلتاً جنبه خوراکی داره مثل گوسال و اینا. حیواناتی که گوش خارند اگر به خاطر بشه خیلی کم جلده دار میشه گره گوشی رو سر حیواناتی که گوشتشون گوشخوارند با خاطر خوردن گوشت گوشتشون مصرف خوراکی نداره خلاف حیواناتی که مصرف گیاه گیاهان حیواناتی که از گیاه میخورن اینطوریه گیاهان هم همین زاویه کلی چیزه باشه گیاهان خودرو رو دارویه داروییه گیاهان کاشکی غالبا خوراکیه میخوام بگم بجد و امانه اینکه ندارن با هم دیگه. قال وقت گرفتن این مقدار گیاهان صحرایی این جنبه داروی خیلی قوی راستام هست. اینو می‌گی به رسو خیلی چو. خیلی‌ها که سلیمیه. الان شما این رو بدین به دستت. نه الان سابقا من دستت واقعا می‌فهمندن که اینا یه نوع حفظ و صحت می‌خواستن بکنم با استعمال خارجی مجموعه از داروهای گیاهی رو به کار می‌بردن که مرض در بدن پیدا نشیه. خود از خود گله ختمی که آمده دیوان داری احساس کن این برای زد خیلی فهمیده راست راستن از دوست داری اول در رواض ما ختمی داره روایت ما همین می‌گواد اما در طب دارن که بهتر نیست ریشه ی گله حکمی است مثل آثار ریشه قوی تر از بریای زارش بعدم تخمش بعدش هم برگش و بعدش هم گلهش هر کدام یه شاهید داره که جوش پس ختمی که در روایات داره نوره که در رواض ما داره این ای که از اهل سنت نعر کنه. بله؟ تو داموازه تو داموازه نشسته که شما صادق میتونی. صحابه نگاه بکنی بله این نه دیگه. دانش کجا؟ خیلی جلب داره داره. هر که سطر این که پیدا داری 37 هاشون قوی تره تو اینها یعنی انصافا خیلی این همین استن خیلی جنبه ز دفنیش قوی چون خیلی هم قوی خورده خرد بیشتر استعمال خارجی باشه استعمال داخلی خیلی وقت بایکیار باید باید باشه علی عمران مسئله بله بله علی بله بله. بله. به همین نوسته دعای روایت نشر نشر غالبا جنبه های به اصطلاح بهداشتی داره عرض کردم حرمل هم جنبه به اصطلاح دو افونی بسیار قوی داره با های خود پیل حرمل میگیم میگیریم سفن و تصالی هم توی عطاق قوم خیلی زیاده. دو ما هم گیریم بیابون پاره از حرمل میشه و خود گیاه هم به نفسه داره آثاره خیلی عجیبه جزو آثار خود برای نفهم داره سفن داره دو دوده داره سفن هرمن توش دود نداره یه انجام میزن یه یه نحوه استعماله دود این نحوه استعمال و الله از زواهر روایات حرمن این که وجود خود بوته اسفرین اثر پر داره که این بحثه قرمی گفت این خاصیه این برشگاه به خاصیه که اصلا خود وجود این نواد این خسرت داره چون نمیخوانیم بحثه تر پشید به هر حال اونی که ما الان میفهمیم انصافا روایات بست این روایات دعا که هم نایده بودن و هر انصافا مجموعهی که ما هر ملک کن بس همین که تا رو گفتیم بله دعا جنبه باطنی خود محمد زکره ی رازی کتاب داره عطب و عطب روحانی نمیدان چاپ شده یادم به نظرم چاپ شده باشه چاپ ایشون معتقده که یکی از راه های خوب علاج مرض جنبه روحانیه با که خود محمد زکره ی رازی رسای رسایی عادتا اداد مرهدی نام برده میشه صلا بعد جای باشی که خیلی با سلام و صلوات هم خب های دیگه هم داره که خیلی آثار به انحراف درش دیده میشه. در هر حال واژه بحث اوائد محمد ذکر رو خیلی باشی. علاوه بر عکیب که کتاب نوعی سیر روحانی دارن یعنی تأثیر دعا و آیات در های تبی هست این هم صادقه. علاوه حالا شاید ذکر نوشه به خاطر همین دعا باشه، بعید نیست. این مجموعه نوشه که خب جنبه معنوی و جنبه روانی و روحی پیدا میکنه روایات نشته هم انصافه بود بعد نیز و این و تحلیل علمی هم داره خیلی از که خب زیاده به بر قرآن است و دعا میتونه ما کم صحباتیم صحبات اینوز ما این راجه این سه عنوان تا فردا بریم به سه فردا اینوز که اونی که به سه بر علاوی به اون حرزم چیلانی علامیت گفتم انص الله علیه و الله علیه